ایران بازنگری در تاریخ قلم رو به اصلی بازاندیشی و یا حتی اگر ادعا نباشه بازنگری در مورد تاریخ ایران و 100 سال پیش میون منور اون کشور ما رایت شد این تاریخ جدید 100 ساله؟ از این که هر حرفی در ناشکاه زده بشه و هر کتابی که در اونجا تدویس بشه بگیم علمیه و اکادومیکیه از همچیزی نیست به نام یزدان با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید و به ویژه همراهان برنامه ایران وج برنامه جدید که در قسمت اون در خدمت شما هستیم در قسمت اول ضمن شروع مقدمات باب بازخانی و بازشناسی تاریخ واقعی ایران تاریخی که در واقع فکر می کنیم که به واقعیت نزدیک تر است و نقد تاریخی که حدود ست سال اخیر نگاشته شده ما در قسمت گذشته به همراه جناب آقای ایران مه و جناب آقای کریم و جناب آقای فیروزی نقد مبانی تشکیل دهنده این تاریخ و متدولوژی که این تاریخ بر آن در واقع استوار هست پرداختیم جناب آقای فیروزی از شما شروع می کنیم چون انتقادات شما درباره این اصلی ترین مبنای این تاریخ یعنی مهاجرت شما چه نقدی دارید به این بحث مهاجرت ببینید اول اینو مشخص بکنیم که بحث ما بر سر این هست که آیا نیاکان ایرانیان که آریایی ها هستند 3000 سال پیش به بعد به فلات ایران وارد شدن یا از قدیم بودن بعضی این نیست که نیاک آریایی ها اصلا وجود نداشتن در فلات بحثی که بنده می به این صورت است ولی ببینید کلیت داستان از هندوستان آغاز میشه یعنی زبان همون آقای که کتاب رو می نویسه این آقا می که هندوستان سرزمینی بود که یه سکی بومی داشت و بعد آریایی ها که نیاکان هندی ها هستن حمله می کنن اونجا رو می گیرن و خب فرنگ خودشون ایجاد می کنن. بعد پشت سر این همین لباسی که برای هندوستان دوخته شده و برای ایران دوختن نعنی این همون رو اومدن بدون در گرفتن شهره هندوستان آلبیگیری که برای ایران و این لباس ناموزون رو برای ایران به تنگ کردن در صورتی که واقعا اراده دارین قضیه یعنی واقعا خب بله آریایی ها وارد هندوستان شدن این رو ما میتونیم هم در ظاهر فعلی مردم هندوستان ببینیم که دو دست ها. یه دسته هندیای شما سیاه میبینید سیاه یه دسته هندیای سفید روی میبینید خب این مشخصه که واقعا دو گروه هستن دو اینکه آقای کریمی در زبان شناسیشون ریشه ها متفاوت هست سه اینکه اصلا دلیلی برای ورود به هندوستان وجود داشته اینا در سه هزار چهار هزار سال پیش از سرزبین های خشک فلات ایران یا شمال افغانستان خب بعد میخواستن دنبال آب می‌گاشن سر از هندوستان پر آب دروردن اون جنگل ها و اون سی‌ها رو به زدن و خب این منطقیه یعنی بلده. از نظر چیزی از نظر حتی ادلی منطق تفکر بشری منطقیه دلیلی وجود داره واسه اتفاق ولی برای فلات ایران آیرام هر کردن شما نگاه کنید اینا حالا آره ها یا قفقاز هست یا اوکراین هست و شما در مازندران میگن از اوکراین اومدن شما در مازندران بعد حالا این دو دسته میشه یه میگن اومدن قفقاز نیا کنه ایرانیان آری ها درست میگن رفتن آسه میانه اومدن تو فلات ایران خب شما یه شطور رو قرار بدید که حیوان بیابان گرده اینو بذارید توی جای پر چمن و دشت و خوردم و پر آب بعد جلوش بیابون باشه این شطور جلو نمیره. چطور انتظار میره که ما بپذیریم که نیاکان ایرانیان یا ها در 3000 سال پیش شما درای مازندران که چمنزار است و پرآب و بیان تو آسیه میانه خشک از اونجا اونجا را ولکران بیان تو فلات خوش تر اصلا عقل سلیم یه آدم نرمال اینو نیپذیره حالا این رو قانون کردن فرضن که جای خوددار تدریس میکنن و میگن این علمیه اصلا من چیز سلامت عقل تو این فرض نمی بینم. باقی مسئله سوم این هستش که میگن بومیانی وجود دارند و الان حل شدن آقای یعنی چی حل؟ این حل شدن ما باید اولا تعریف کنیم حل شدن یا باید آمیزش انجام شده باشه یعنی فرزنزایی کرده باشن یا باید لباس به تن اینا کرده باشن و این خودشون اگه مثلا یک قیافه چهره مشابه داشته باشن اگه بوصه مشابه تعیین کرده باشه اینا هویت زدایی کرده باشه این اش ایناست دیگر. یا بعد از دم کشته باشن دیگه یک ای این سه شما در هندوستان میتونید تفاوت های ظاهری و تا ژنتیکی رو که بعدن باز میکنیم و ببینید واقعا دو دو گروه مردم هست و از اونجایی که ما میدونیم که هندوستان یک سرزمین شمال به جنوب خب قاعدتا وقتی مهاجره علو میکنه اون بومی رو بعدن به جنوب و شما دقیقا اینو میبینید از شمال ان روسان میید به جنوب ان روسان چهره ها تر میشه و اینا تر میشه در ژنتیکشون هم اینطور است در فلات ایران به حال طبق این فرضیه مهاجرت از شمال به جنوب بوده دیگه پس چرا ما نه در چهره ها متفاوض می‌بینیم یک یعنی مثلا علت ها لا شدید عرض علت خفیف نه اینجوری مثلا چهش طرف یه خود روشن‌تر اینا نه واقعا اون چیزی که شما تشخیص بگی واقعا خاصگیش متفاوته. و نه در ژنتیکشون تفاوت میبینی و این قضیه هم دوباره از این نظر مشکل داره. به نظر من هم قضیه فکر استعماری است که از هندوستان شروع شد خواستن رو, رو, رو, رو پیاده کنن و به نظر میاد که خوب نتونستن این چفت و بس رو جور کنن بله ولی خب همونطوری که تو برنامه پیشنم بنده از کردم یه شانس تاریخی آوردن در دوران انباشت علم و در دوران گسترش علم اپیدومولوژی که علوم مختلف خصوصا علوم انسانی به وجود چون در واقع تولد علوم انسانی مال قرن 18 و 19 هستش و این قرن 19 هستش که با پوزیتیویسم در واقع با ورود پوزیتیویسم به علوم انسانی تونستن این علم رو گسترش بدن و یک انقلابی در علوم انسانی به وجود و در همین موقعی این چیز رو به وجود آوردن با اون که پایه های علمی و پایه های تئوریکی نداره ولی تونستان اینو جا بندازن و خیلی‌ها در واقع اینو پذیرفتن حالا به قلاغای کریمی شاید برخی از اون پژوهشگران منصف غربی همین اینو نمی‌پذیرن ولی خیلی واقعاً پذیرفتن و در کشور خود ما عموماً پذیرفتن اینو و چنین چیزی رو با که پایه علمی خیلی ضعیفی داره و شاید این شانس تاریخی است که اونها آوردن و همونطور که شما فرمودید ابتدا که توسط کمپانی هند شرقی هند در واقع مستعمره شد خب چنین چیزی رو برای هند پیاده کردن ولی خب تو ایران ایران که به شکل هند مستعمره نشد و به قول جان فوران درسته که حالا مستعمره نشد ولی خب تمام مزارات یک مستعمره رو داشت و در این حال مزایای یک مستعمره که در تو هند حالا ما میبینیم حالا مزایا و ظاهریه ظاهری اونا های مزایا رو به وجود می آوردن که بتونن چپاول کنن و بتونن راحت از این سروت ها استفاده کنن و سروت های ملل رو به غارت و یغما ببرن ولی حداقل اون مزایا رو هم برای ایران ما نمی‌بینیم مثلا تو کشور ایران موقع دوره استعمار که شما تو هند می‌بینید هزاران کیلومتر راه آهن ساخته میشه در کشور ما موقعی که مشروطه میشه و کلا کیلومتر راه آهن داریم که یکی از نمادهای توسعه در دنیای امروز هستش. ولی فلحال ما این تاریخ رو در واقع نمیپازیم. چون ایران یالمر ما توی متون گذشته خب این شک تاریخ رو نمیبینیم. یعنی بزرگترین مدعای ما اینه که مال صد سال اخیره چون که تو گذشته نمیبینیم. ما اندیشمندانی داریم که بسیار ضد تمدن ایران بودن حالا ضد عقل گرایی بودن ضد معتزله که برگرفته از افکار ایرانی بودن مثل غزالی طوسی که خودش هم یک ایرانی الاصل بود ولی خاطر خب در یک ای که در مدرسه نظامیه بغداد بوده این شخص بر علیه معتزله علم مخالفت برمیخیزه در کتاب تهافت الفلاسفه ابن سینا و فارابی رو تکفیر میکنه گرچه بعد, بعد از اینکه از نظامیه بغداد اخراج میشه خب این تکفیر رو پس می‌گیره تهافت تهافه رو بنویسه ولی چنین شخصی با اینکه ضد عقل گرایی بوده ولی همون موقع باز هم اون تاریخی که ایرانی ها عمومن اجداد ما ایرانی ها اونو اون میگه مثلا در یه جایی میگه که بعد از آدم بول بشر خب این دو تا فرزند داشته که فرزندان زیاد داشت ولی دو تا شاخص بده یکی شز هست که کیوومرد هست کیوممردی که دو شاهنا های فردازی اونو اون رو می بینیم یعنی ای همچین, همچین فردی هم فرد ضد اقلل گراییز و یک اخباری متعصب چنین چیزی رو میپذیرفته عجیب هستش که حتی الان اونایی که پوزیتیویسم علوم اجتماعی رو میپذیرن چطوره که ما نمیتونیم تو مغز اونها توی ذهن اونها وارد بشیم که بگیم بابا این تاریخی که نوشته شده این هم ممکنه ایراد داشته باشه میتونیم با پژوهش و تحقیق علمی این رو تغییر بدیم ریشه های در واقع به وجود آممدم و پذیرفتن چنین تاریخ توسط نخبه های ما چیه؟ به چه دلیل نخبه های ما این رو پذیرفتن و هیچ چیزی هم خلاف رو نمی پذیرند یه علتش چیه علتش در چیست ؟ بله من اول یک گله از شما مهدی. شما چون من سی و شش برنامه تجربه شد دارم بله حالا یک مقدار چون به مدیریت جلسه سرم کردم من میدونم کار سختیه شما بههده گرفتیم. اما من از شما خواهرج می بیشتر وارد بحث بشین. از مواص شما استفاده کنید من نمی‌دونم چرا یه دفعه بحث و خودتون رو خودتونو جمع می‌کنین و با گذار به مهمانان چون من خودم خیلی از مواص شما از این استفاده کردم خواهش می‌کنم اکراه نکنین از ورود به بحث این خواهش منه یک نکته دیگه میخواستم درباره در این مواص بگم ما نمیتونیم تو جلسات 25م 36م 70م به جایی برسیم که بنده دارم از یخوندان میگم آی فیروزی دارن از هزار دوم میگن شما مثلا تو بحث زمان زرتشت باشین آی کریمی مثلا دارن هزاره یکم پیش از میلاد میگن نمیتونیم اینطوری بحث رو باید مدیریت کنیم از یک دوره ممکنه آی کریمی زبان شناسی بگن آی فیروزی ژنتیک بگن اما تقریبا هممون باید یک دوره و یک موضوع رو باده. تمام جوانبش رو بررسی کنیم من احساس میکنم اگر این مدار هممون تذکر به همگی خودمون دارم میدم نه چون فعلا مقدماتی هنوز آره، نشدیم هنو بسی تاریخی نشدیم. آره این دوستان مثلا من روی سخن اینجا با فیروزیه این مباحثو رو خواهش میکنم در جای خودش این مقدماتی که میگن اینا رو باز کنن و مثلا خیلی من تو پاینامه ایشون شرکت داشتم این بحث اینی که جمعیتی که از شمال وارد هند شد اینا رو هل داد به سمت جنوب نقشه‌ی ژنتیک که نشون دادن حیرت‌آور بود. آقای فیروزه بخان صحبت کردن در باره بوت ساعتها توضیح بدن و دلایل اینا رو باز کنن. من امیدوارم که اینا رو به صورت مقدمه الان مثلا دارن میگن که شاید ذهنشون آشنا بشه. بله بله خب بس امیدواریم به جای. خدمتون بگم آقای دکتر همین که ارس کردم من در یک جلسه غیر رسمی هم به شما گفتم اینی که قزالی از کیومرس رو نام میبره و امروز کیومرس افسانه پنداشته میشه و کنار گذاشته شده اینه که در اون زمان روایت دیگهی موجود نبود بله یعنی همه روایت موجود رو مطقم بود و پذیرفته بودن مشکلی هم باش نداشتن همه جاش هم به هم میخوند اون موقع تاریخ شما دیاک میشه وجود نداشت همه همینو میگفتن قزالی هم مثل بقیه همینو قبول داشت و میگفت بحث کیومرس یک بحث بسیار بسیار پیچیده مهم و از همه اساسی. جوانب اساسی بنیانی و این کلی ما درباره اش بحث کنیم بنابراین اینجا وارد بحثش نمیشیم اما اینکه که اون چطوری کیومرس کیومرثو میشناخته طبیعیه امروز اگه میبینین غرب این رو پیدا کرده ببینید آقای دکتر شما استاد این مواحث هستین دارین همین رشته رو می میدونین هر کسی که این نقل قولای دکتر شریمی وکیلیه در کتابش من هر چی رو که میگم میگم هم کی گفته ولو یکی در تضاد فکری با من باشه آخه شریمی وکیلی در تضاد فکری خیلی با من نیستم مثال میزنم بله هر که حتی حت اگر یکی هم باشه که در تضاد فکری با من باشه من میگم این حرفو کی گفته چون من معترضم که ببینیم کی این چی گفته چیکار کی گفته آیه وکیلی که دوستان خوب بندم هستن تو کتابشون گفتن که هر کسی که بتونه فراروایت خودشو جاب اندازه فرمان کار و ادامه کار، مطمئناً اون به دست میگیره بله قربی ها آقا کاملا حساب شده کار کردن فراروایت خودشونو نشر رو گسترش دادن درباره هر موضوعی و این موضوع و امروز ببینیم که فرمان رو به دست گرفتن و دیگه حالا سوار خر و بالای بوم کردیم حالا پایین هم بیاریم دیگه بله. دکتر حسانی میگن که خود غربی ها امروز شروع کردن به نقد نظریات خودشون در دوره 300 سال استعمار استعمار اروپایی بله. میگه اما ما همچنان به صورت یک موجود مقدس و یک روایت مقدس به روایت اونا نگاه میکنیم حاضر هم نیستیم ول کنیم خود ما ایر ما ول نمیکنیم حالا اونا ول کردن کم کم حالا باز ما اینم یک مپ اینی که چه داره به ما میگذره این خیلی بحث مهمی. آ دکتر ما از اولم از تفکرات مزدکی و شپ مزدکی خوردیم هنوزم داریم میخوریم پیش ازی که مزدک زاده بشه بوگواس در خاندان اخاملشی همین نقش رو ایفا کرد یعنی کاملا اونا رو از درون خورد یه شخصی بود یا گیومات مق همین ها رو میگفت یعنی گیومات مق چیزی جز چپای فکری امروز نمیگفت گیومات مق وقتی که کبوجی از مثلا رفت و بر نگشت و داریشون برگشتن چیکار کرده بود کل استابل شایی رو تقسیم کرده بود بین طرف داراش خزانه شایی رو خالی کرده بود گروه اصلا اینا رو میخواییم چیکار ارتشو رو مرخص کرده بود کارایی که عوام خوششون میاد اما مملکت رو نابود میکنه کارایی که شیرویه داشت میکرد خسرو گفت نکن اما کرد رو به باد داد همون حرفای مزدک بود اینو آیه فیروز یک بحث خیلی مفصلی کتابی هم در این باره دارن حالا بعد اون به موقع خودش بقیم. ما امروز هم از همون تفکر داریم میخوریم آیه یعنی هیچ ف... این گار هیچ اصلا نمیخویم از تاریخ درس بگیریم من فقط برای که بگم داری چه بلای سرمون میاد من این مثال براتون میذارم فقط اون راهن که گفتین جالبه اون راهن هم جام شد بله. همون 6 کیلومتر هم بعدا جمع جمع جمعش جمع جمع کردن جالبه جا پند میکنن مارو مارو جَم کردن من فقط یه مثال برای شما میذارم ببینید ما کجا گیر کردیم و چجوری باید فکر کنیم از این گیر باید خارج بشیم من برای که بس حساب تکراری نشه همین تیکه کوتاه رو میگم بعد بس رو با دوستان دیگه که در این جلسه هستن و شما ادامه میدیم بعدا اگه وقت بود از این بخش دوم بعد من باز وارد بس میشم ببینید سال 1890 ميلادی. برابر با 1307 هجری قمری نه خورشیدی. میرزا علی اسقرخان امینو سلطان اتابه که از طرف ناصر الدین شاه قراردادی رو امضا میکنه با روسوف سفیر روسیه در ایران مضمون قرارداد ایران تا ده سال خودش امضا میکنه که راهن نسازه و با هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگه‌ای هم اجازه نداشته باشه که قرارداد ببنده که راه هم براش بسازه ده سال تو 10 سال شما حق نداری راه در عوضش ما بانک استقرازی روسیه رو می‌گیریم اینجا چون آقا ناصرالدین شاه دوست داشته بره اروپا رو فرنگ رو ببینه پول می‌خواسته دیگه گفت آقا پول بهت میدم برو فرنگ رو ببین تو تا این قراردادام با ما ببند تو تو 10 سال راه نداص آقا یه نفر اینجا با خودش فکر نکند این بریچی داره منو دوست داره خوشش میاد از من بله شما گفت راهن اصلا من چرا با قبول کنم راهن نسازم این که از این این قرارداد سال 1900 تموم میشه میشینن همینا دوباره روبروی هم ده سال دیگه اینو تمدیدش میکنن این همون قرارداد میگن برای تا 10 سال دیگه, دیگه میرن بعدی که سال 1910 میشه میگن خب چکا کنیم میگن بیا مشارکت بین المللی کنیم حالا بعد اینا کم کم به ذهن شراندا آشنا میاد مشارکت بین المللی کنیم برای این کار راهن شما ببینیم بررسی کنیم راهن شما با چی بشه؟ کنسرسیوم تشکیل میشه از فرانسه، روسیه و انگلستان اون موقع طبیعتاً از به این صورت در کار نبود این کنسرسیوم نتیجه جلسشی میشه که ایران تا 17 سال دیگه هم اجازه تسراهن ندار اینو اضافه کنین به دو دوره ای که ناصر شاه به صورت دافتلبانه دو دوره چهار و پنج ساله پذیرفته بوده که راهن ایران نسازه یعنی سر ایران پنجاه سال از ساخت راهن عقب افتاد شما من بگین اگه پنجاه سال ایران را زودتر راهن می چه جوری می شد؟ اتن... می میگن آمریکا برای این آمریکا شد که راه آهن بود وگرنه مثل اروپا کشورهای جدا جدا می شد اگه پنجاه سال زودتر راهن اخترامی شد اروپا به جایی که الان اتحادیه بشه همون موقع مثل آمریکا یک کشور, یک کشور می شود. بعد اینا پنجاه سال به ما گفتن شما راههن را ناد داشته باشیم ما گفت تو تاریخ قبلش هم همین بود بعدش هم تکرار شد متاسفانه هنوز هم داره تکرار میشه تنها نیست که تو کتابایی درسی ما دانشگاه ما کوچار یا یوروپذزی رفتیم همین کار غلط رو هی همینجور داریم تکرار میکنیم همین الان هم داریم تکرار میکنیم من نمیدونم این کی چجوری با جلوش گرفته باشه درد ما یه درد جامعه ای دکتر ما که به کوش و تاریخ پرداختیم چون بحث مهمیه به هویت اجتماعی ما مربوط میشه میگیم شاید از این راهی مردم یه مدار قرور ملیشون شاید احیا بشه از این وضع بیایم بیرون بله. من ختمش میکنم حالا تا اگه باز وقت شد خیلی متشکلیم از فرمایشات شما صدای امید رو میشنوید برنامه ایران وچ پل ارتباطی شما با این برنامه ایمیل info at صدای امید.com جناب آقای ایران مهر از وارد یک سری از مقولها از اندیشه قلب شدن من اجازه می خواهم از دوستان که یکی از دلایل تفوق غرب در یکی دو قرن اخیر رو باعث شده که ریشش تو این اندیشه هستش اندیشه ای است که دنبال هژمونی و سلطه طلبی هستش از مفهوم فرار فراروایت صحبت کردن فراروایتی که اندیشمندان پست مثل لیوتار جان لیوتار و فردریک جیمسون و فوکو تا حدودی از اون یاد میکنه که چطور یک فرهنگی میاد اون روایت خاص و روایت مورد تأیید خودش رو به عنوان یک روایت مسلط می قبولونه در حالی که شاید اون روایت روایت مسلط هم نباشه شاید دیدگاه های علمی درستی هم پشتش نباشه شاید مبانی علمی درستی هم پشتش نباشه همین مسئله پوزیتیویزم شما فکر همین الان هم در واقع کوس رسواییش ریخته شده و حتی از زمان ماکسی و به سی سال بیشتر این تفوقش پذیرفته نشده ولی چنان ریشه دوان در بین اندیشمندان غربی و حتی شرقی که همین الان هم شما نمیتونید جلوی این تفوق اون رو بگیرید همین الان هم شما به نوع تحقیقات علمی علوم انسانی که توی کشورهای جهان سوم و بی کشورهای پیرامونی نگاه کنید اساسش بر پوزیتیویسمه خود پوزیتیویسمی که 90 سال غربی ها دارن ازش انتقاد میکنن ولی به عنوان فرار به کشورها و به ملل و به جواب حالا استش هر چی بخواید به دول پیرامون و خودشون اینو قبولاندند. و مسئله زبان شما اشاره کردید زبانی که شما خود زبانی مثل زبان انگلیسی که الان میشه یه زبان مسلط در دنیاست یه زبانی است که هم از طریق شبکههای اجتماعی از طریق اینفورماتیشن یا همون آیتی تونسته این زبان خودش رو به عنوان زبان مسلط در بیاره یک اندیشمندی است به اسم ژاک دریدا که من دوستان توصیه میکنم که این نظریه واسازی که چرا چطوری یک زبان با تمام ضعف خودش میدونی که زبان انگلیسی در میان زبانهای های غربی اصلا ضعیف زبان هست کمترین میزان قدرت تولید فلسفه داره تو زبان‌های غربی فقط زبان یونانی و زبان یونان نام یونانی قدیم حالا اگه بپذیریم یونانی حالا اونا, ما اونا میگن گریس ما میگیم یونانی و زبان آلمانی است که قدرت تولید فلسفه ده اون هم زبان آلمانی در دوره جدیدش زبان ایتالیایی که دانته پایه‌گذار اون بود بعد ماکیاولی حتی اون زبان هم قدرت تولید فلسفه نداره حتی اون زبان هم با اینکه قدرت تولید فلسفه نداره از زبان انگلیسی قوی تر هست از لحاظ خود سازی و قدرت زبانی پذیرفته تفوق اون رو یه نظریه هست خب حالا شما انتقاد کردید از مزدکیست ها, از چپ ها حالا یا مارکیست ها مارکیست ها یا امپریالیزم رو به دو قسمت تقسیم که به دو دوره تقسیم کردن سرمایهداری ما قبل از انحصاری و سرمایهداری انحصاری ولی متفکرین آلمانی برهه پمودرن مثل راینی هارت کوزلیک مثل کلاوس اوفه و تا حدودی هابرماس یه دوره جدیدی از کاپیتالیسم رو یا همون سرمایهداری رو کشف کردن اسمش از اشپت کاپیتالیسموس کاپیتالیسم دیرمانده چون اشپت تو زبان آلمانی دیر آ بودن یا دیرینه شدن یه دو کاپیتالیستی که دیر مانده است این نوع کاپیتالیسم به قول ادوارد اشپنگلر یا کاپیتالیستی که بر میلیتاریسم مستواره شما میدونین دلیل اصلی این که پیمان ناتو الان باقی مونده چه دلیلی وجود داشت یه پیمانی است که برای پیمانش ورشو به وجود بود با فروپاشی دول غربی اینم فرو میریخت خود به خود باید فرو میریخت ادوارد اشپنگلر یه چیز جالبی میگه میگه که ناتو برای مقابله با پیمان ورشو به وجود نیامده. ناتو برای مقابله با تاریخ به وجود اومده. شاید بلالات خیلی جالب باشه. ادوارد اشپنگلر حالا من این مقدمه رو میگم چون ادوارد اشپنگلر معتقد به هزاره ها بود. او معتقد بود که هزاره‌ی جدید هزاره‌ی دوم پس از هزارها بر اساس میلاد مسیح در نظر میگیرند. معتقد که هزاری دوم میلاد هزاره غربه که با جنگ‌های صلیبی شروع شد. و با ورود تمدن از کشورهای مسلمان شد تمدن غربی تمدن قبل از این هزاره یعنی هزاره اوله مسیح رو هزاره اسلامیک میگه لزوما اسلام نیست اسلام و مسیحیت شروع مسیحیت با آگوستین که خود آگستین ها مانوی بوده میرسیم شاید, قسمت صدام صد... صد شاید شاید قسمت صدم صد و 150 شاید شاید اگه تونستیم حوصله داشتیم برسیم چون موضوع بحث ما خیلی اون نیستش که خود او هم مانوی بوده بعدم میاد مسیحی میشه هزاری اسلامی هست که هم مسیحیت است که شش قرنش مسیحیت چهار قرنش مسلمانه به ولی دوره اسلامیک میگن هزاری قبلترش هم تقسیم میکنه و هیچ اسمی هم از ایران نمیبره هزار قبل از اون رو مصر میدونه هزاری سوم قبل از اون رو, رو تا سومر میرسه حالا بگذاریم کاری با این نداریم که اصلا تو این هزارها اسمی از ایران نمیبره ولی یک ایده جالبی داره میگه که هزاری قرب رو به پایانه هزاری قرب از لحاظ یعنی قرب به عنوان یک فلسفه غرب به عنوان یک اندیشه قرب به عنوان یک ایده حالا قرب و شرق رو ما حالا برای فهم قرب و شرق من دوستان توصیه میکنم به آثار شهابودی شخ... سهروردی چون این از, ش... از فلسفه اشراقه ایرانی گرفتن چون او هم در واقع خودش میگه میگه برگرفته از حکمت خسروانی رو میگه اینجا منظور از غرب فلسفه غرب اونه میگه غرب به عنوان یک فلسفه غرب به عنوان لا... یک لایف قرب غرب به عنوان یک اندیشه سیاسی رو به پایان هست و باید جای خودش رو به یک تمدن جایگزین بده الان مهمترین دغدغه تو این 20 سال اخیر مهمترین دغدغه در میان نظریه پردازان و تئوری پردازان و تئوریسین های پنتاگون، موساد، اینتلیجنت سرویس و سی ای اینه که اصلا این تمدن کجا قراره بره. چون جلو تاریخ که نمیتونم وایسم. بالاخره یه فلسفه تا یه زمانی قدرت تولید اندیشه داره، تا یه زمانی قدرت تولید فلسفه و دکترین داره. هر چقدر هم در واقع امکانات داشته باشه چون امکانات مادی که دلیل بر نیست اگه امکانات مادی یا بمب اتمی اینها بود وسعت بود خب شوروی حفظ میشد دیگه شوروی با اون هیمنهش حدود دو میلیارد نفر از مردم جهان تحت سیطری این ایدولوژی به هم ریخت اصلا با, با یک با یک میدونه که ایدولوژی مارکسیسم با یک نقد فلسفی عمیق فرو ریخت اصلا تمام اون کاخ بزرگی که بزرگانی مثل مارکس و انگلس و لوکزبورگو و لیین و ایناساخ فرو فروریخت دستن حالا اونیم که تو چین ماک مادم و سرمایه داریه فرقی با سرمایداری نداره حالا فل کاری نداریم با این ولی ادوارد اشپنگلر این افکار امپریالیستیش اینجا نمایان پیدا میکنه میگه قرب یه شانس تاریخی داره که هزارها ها و تمون هایی که هزاره های قبل داشتن اینو نداشتن که این خیلی خطرناکه. میگه قرب تا امکانات داره یکی امکاناتی ملیتاریستشه، یکی امکانات آنفرماتیکی گفت قرب باید از این امکانی که داره استفاده بکنه و جونه تاریخ بیسته اصلا نظریه پایان تاریخ فوکویاما بر همین استواره که تاریخ باید تو همین لیبرال دموکراسی غربی با نوع لایفستایل آمریکایی، با نوع فلسفه سیاسی غربی باید پایان بپذیره دیگه رو این فلسفه روی این تمدن تمدنی دیگه باید نباید دیگه بیاد. تو همین باید به پایان بپذیره همون دور که ما مارکسیسم هم همین مارکس هم یه همچین نظریه به خاطر خیلی ها هم مارکس هم فوکویااما هم هگلی میدونن دیگه هگل هم دنبال پایان و تاریخ بود دیگه دنبال یه چیزی بود که اون روح او گایست تاریخ توی یه جایی باید بیسته و تاریخ به پایان بپذیره با این تفاوت که مارکس در انتهای چپ بود ولی فوکویااما در انتهای راست ولی هر دو هگلی بودن هیچ فرقی هم نداره لزوماً اون قسمت خطرناکه اندیشه اشپنگلر اینه که که خیلی ها اینو پذیرفتن و دنبال اینن بحث در واقع انتقال و گسترش ناتو به رو همینه شما فکر نکنید که دنبال این هستن دنبال اینن که شما نقشه توجه بکنید الان ناتو تو ترکیه است بیاد به سمت قفقاز ارمنستان و آذربایجان به ازبک بشه بره اون سمت دریای کاسپیان قزاقستان و قزاقستان و اون پاکستان و افغانستان یعنی چی؟ یعنی این جهت هم بال محاصره چی مشخص دنبال این هستن که یه تمدنی که میخواد از این منطقه برخیزه حالا میگن میگن که یه تمدن ممکن از روس برخیزه یه دمی میگن ممکن از هند برخیزه یه میگن که اون تمدن ممکن از چین برخیزه یه دمی معتقدن که از خود ایران ممکن یه ای تمدنی برخیزه ولی اونها میگن که نه ما نمی‌ذاریم ما یه همچین امکاناتی داریم مسلمان ها امکاناتی داشتن ام... چنین امکانتون نداشتن جنگ جنگ‌های صلیبی درست حالا یه صلاح الدین ایوبی بود که بر ما پیروز شد ولی این امکان نداشتن که تمدن خودشون رو ادامه بدن یا مثلا مصری ها چنین امکاناتی نداشتن حالا ب... حالا بگ در زمانش صحبت خواهیم کرد در مورد تمدن مصر ولی اون مثلا تقسیم بندی اونها ما می‌گیم میگه که اونها چنین چیزی ندارن ولی ما چه امکانی رو داریم و این امکان رو خیلی‌ها میگن که از الان شروع کردن اینو در حالی که این حرف غلطه از همون 300 سال پیش هستش که اینها این تفکر رو دارن و میخوان تمدن خودشون رو در واقع ابدی بکنن و اجازه ندن یه تمدن دیگه مقابل اینها برخیزه و فلسفه جدیدی تولید بکنه، لایف استایل جدید، حرف جدیدی برای گفتن داشته باشه. من اصرار می که صحبتم یه ذره به درازا انجامید. جناب آقای فیروزی، نظر شما رو می شنویم. دلیل اصلی که در کشور ما هم خیلی ها پذیرفتن با اونکه امکانات مطالعه و امکانات تحقیق و پژوهش هم هست، و چه دلیل رو شما می‌بینین که برخی ها چنین تاریخ رو پذیرفتن و نمیخوان چون تاریخ بالاخره شناسنامه همه ماست هویت ماست هر کسی رو با شناسنامش می‌شناسن با هویتش می‌شناسن چه دلیلی وجود داره که چنین پجوهش هایی که برخلاف چنین تاریخی هستش مغفول هستش که خیلی از خبر ندونه شاید مثلا خیلی‌ها که برنامه ما رو می‌شنونن اصلا میگن اینا دا چی دارن میگن ما دیگه همون تاریخ همون ماد و حخامش این چه ارادی داره چه کوروش هم هست پیشخوام واقعا چه ایرادی وسط وجود داره فکر کنم ریشهش توی باستان شناسی کشور و چگونگی انتخاب باستان شناسای کشور و چگونگی دستاوی همین بچه ها به استادی نهفته است این یعنی چی ببینید شما جامعه پزشکی رو ببینید یک دانشکده بفرد و ویژه برای خودش داره و سختترین نمره در کنکور هم رشته پزشکی دارن این یعنی چی یعنی هر کسی که علاقه مند باشه نمیتونه پاشو بذاره صرف کسی میتونه پاشو بذاره علاوه بر علاقه من بودن استعدادش و فهم اون رشته رو داشته باشه واسه اینه که پزشکی ایرانی ای که از تاپ تایم پزشکی شهرش شک کنم در اون نیست یعنی بهترین و سطح ترین عملهای جراحي در ایران امیناً انجام, انجام میشه ولی شما قیاس کنید با باستان شناسی کشور این رشته بعد از حقوق علوم سیاسی، حتی گاهی موقع مثلا جغرافیا اینا نمره کنکور و طرفدار داره. بله. یعنی این طرف هیچ‌کون رشته‌ها رو قبول نشده، بعد اومده شده انتخاب مثلا 20مش، 30مش، باستان شناسی. خب این یعنی یک این فرد درکی از باستان شناسی نداره. بله. خمیرمایه باستان شناس شدن و آگاهی از اینکه این که دنگ رشته چی می‌خواد نداره. علاقی هم نداره. بعد که وارد میشه اینا یه سرشون افسورده میشن از نظر مالی، از نظر فضای سخت اون درس‌ها رو می‌ذارن میره. یه میمونن چون چاره دیگه ای ندارن یه عده اندکی علاقه من میشه و بعد چیزی که به اینها روز اول گفته میشه خیلی بر من جالب بود اون دوران فوق لیسانس که می پرسیه بذارید که که وقتی وادی این رشته شید من همین جمله ی جا نشید شما مثلا این جمله باید خیلی جمله‌ی بی شرافتمندانه ای باشه که در تضاد با علمی بودن قرار میده نه همچین چیزی بله. یعنی من دیدم باستانشناس از کشور ترکیه با درجه عالی استاد دانشگاه است. باستانشاس کاملا مقالات بروز داره و آدم کاملا علمی است این آدم سخت در تلاش هستش که اثبات کنه با روی میام پرستانه خودش که دو جامعه دو فرهنگ فقط فرهنگ استهمام داشتن دو ملت دو مردم یکی رومیاست هستی که عثمانی هاست یعنی اگر یه من فکر کنم هزار سال دیگه میگذشت و اگر ما هزاران همون به ایران پیدا میکردیم کما که تو بیشاپورم هست هیچ باستانشناسی این جور گفته ای نداشت می تصبه انگ شما و می همپرسی و مثلا غیر علمی بودن متاسب بودن بزنن اصلا بچه های باستانشناسی و حتی استاد های باستانشناسی در ایران معنی علمی بودن رو نفهمیدن. اسی ع ها بچه پزشکی و دانشگاه پزشکی میبین فکر میکن اونا رو عینا تکرار کردن و مقاله نوشتن و اظهای نظر نکردن در یک سری موضوعات خاص این میشه علمی بودن نه این علمی بودن نیست. چ هم آن که و جایگاه اون، چه در نزد مردم یعنی که کسانی که خود باستان شناسی می اهل فن هستن ولی در نظر بیگانگان بی گان خیلی بالایی نداره باستان شناسی ایران و ما باستانشناسی خیلی تاپ در سطح جهانی نداریم استاد تمام هست به بهترین دانشگاه تهران مملکتم هست یه آدم جهانی نیست اینها رو ما متاسفانه در باستان شناسی خودم حل باید کنیم یعنی اولا باید به واسه دانشگاهی جلو तारीफ بشه بله نمره قبولیش بسیار باید بالا و پذیریش سخت باشه که خود این طبیعتا خیلی کسانی که علاقه ندارن او هضم میکنه و خیلی روشنه به این افراد گفته بشه که شما اگر باستان شناس شدید این تذبینی بر این نیست که شما به آینده مالی خوبی برسید اینو باید عاشق باشه اینو باید روشنشون که خیلی از این روشن نیستن واسه همین وقتی میان زره میشه یه نکته دیگه وجود داره این نکته این هستش که شما میبینید یک پزشک ایرانی میره کارهای پزشک آمریکایی رو میخونه وقتی هم میخوان دانشکده ای پزشکی ایرانی رو بزنن میان میگن که خب ما شبیه متد مثلا فلان دانشکده از دانشگاه عمل کنیم حالا الخوری مثلا بو میترش کنیم ولی مثلا در باستانشناسی ایران من خیلی عجیبه به طور گونه و ای یه متود در نظر گرفتن از 60 سال پیش اونم متود بینون نهرین هست یعنی رویش میان رودانی باستانشناسی می رودانی و باستانشناس ایرانی من خیلی فکر کنم این رو بگم آگاهی جرف از متود که در مصر پیاده کردن، یا در چین پیاده کردن، اصلا نداره شما وقتی آگاه نباشید از اون چیزی که در مصر داده که قویه تایی باستان شناسی دنیاست یا اون چیزی که در چین انجام دادن وقتی به این آگاه نباشید بنابراین به روز نخواهید بود وقتی مسائل مشابه با اون چیزی که در اون دو سرزمین رو پیش کشیده مطرح کنید برای اینها این, ها این ها اصلا درکش نمیتونه کنند چون هزمشون چونتون نخوندن نمیتونه فیرم میکنم اصلا شما صحبت طبیع من میخوام یواش یواش حالا این جلسه بعید میدونم فرصت بشه ولی میخوام قبل از اینکه ما وارد بشیم به اون اثار تاریخی و پیش از تاریخی یک نقراژ باستان شناسی و اون کارهایی که در جای دیگه از دنیا شده صحبت کنیم بله اصلا. که حداقل ما اینجوری مطرح کنیم که دیگران چه کردن و ما نکرده بله ادوان قسمت سوم برنامه در همین خاطر بود که اصلا ما چه متدولوژی داریم اصلا دنبال نوع متدولوژی باید باشیم در تاریخ و باستان دریم مورد خواهیم داشت. بله. بله. خیلی متشکرم جناب آقای فیروزی عزیز از فرماشته تو. چند موقع ایرالمی آقای گرامی آقای فیروزی گرامی فرمودن در مورد میهن پرستی این کسان چرا این کلمه که بدی شده مثلا میگن که ما تا صحبت میگیم آقا ما میهن و ما خداپرست ما خاک پرست نیستیم فیلان. در حالی که ما حتی از لحاظ مذهبی هم نگاه کنیم مرحوم ملا محمد کاظم آخوند خراسانی یکی از بزرگتر مشتهدین تاریخ دوری مشروطه کسی که به قول آقای دکتر اکبر ثبوت استاد همه ی ها و مشتهد شید با واسطه یا بی واسطه در این یک قرن اخیره در چندی مکتوبش از, از کلمه میهمپرستی اسم میبره اگه قرار باشه این میهمپرستی مثلا با مذهب خلاف مذهب باشد تا این کلمه چرا همچین استادی یه همچنین شخصی که کفایت الاصول نوشته که اصلا کسی که میشه آیت الله کفایه میخونه میشه آیت الله در واقعی کسی که بنیانگذار اصلاً اجتحاد, در اجتحاد جدید توی دنیای تشعیه هست این کلمه رو خیلی راحت بر زبان میاره و عجیب هم هستش که خیلی از بردن چنین این کلمه ای در واقع عباد دارن در حالی که البته از یه طرف هم ما باید مسئله هم خیلی حساس چون خیلی حساس هستیم مسئله ما در مسئله در ایران یک چیز تصنوی یک چیز تصنوی به اسم قومیت متاسفانه داریم که یکی از اهداف این برنامه این هستش که ما چیزی تحتمان وحدت جمعیتی ایران داریم. چیز تحتمان قومیت این تصنیم و ساختگیست برای از بین بردن یک پارچگی ایران. تحت این مسئله قومیت یه سری ایده ها و یک سری انگاره های متاسفانه به این قومیت ها اضافه شده که وقتی از مسائل مامی هم پاکستان صحبت میکنیم متاسفانه یک واکنش دیده میشه در هم در بین عوام و, و حتی در بین افراد نخبه که در این مورد باید یه در واقع روایته مسائل مختلف رو بکنیم جناب آقای فیروزی در مورد همین باستان شناسی که افرادی که وارد مثلا علوم علم باستان شناسی میشن افرادی هستن که خیلی آشنایی ندارن و خیلی جالب هست برای من در کشوری مثل امریکا معمولاً افرادی که خیلی متمول هستند، از خانواده خیلی متمول هستند یا از که خانواده روشن فکر هستن معمولا به رشته های علوم انسانی روی میارن فلسفه، تاریخ، حقوق، علوم سیاسی ولی در ایران معمولا برعکسه خانواده هایی که مثلا خیلی بچه شاخصی دارن و باهوشی دارن معمولا دوستان برن پزشکی و مهندسی البگو بخونند بله بله همون میخوام خوام کنم که چنین چیزی برای گرفتن هویت یک کشوری واقعا هیچ چیزی بدتر از این نیست که یک کسی بیاد اصلا شما دانشجوی تاریخی نفر مثلا بیاد چه دانشجوی واقعا افتخار هم نمیکنه شاید اصلا اینو کتمان هم بکنه تاریخ باستانش هم کی... بگی مثلا بهش میخندند آه... تاریخ باستانش دیگه چه رشته ایه حتما تنبل بودی و الان رو الان مثلا مثلا دانشگاه آزاد الان, دانشگاه آزاد. الان رشته تاریخ و باستانشناسی اصلا کنکور نداره برو زبتنامو بخون زبلی رشته دیگه مثلا سرش رقابت هستش لذا ما ببینیم که اینجام واقعا برای که تاریخ و شناسنامه و حوییتی کشور رو بگیرن واقعا ببینید کشور رو و ذهنیت جوانانی کشور رو واقعا به چه سمتی من خدمتون بگم که آیه فیروزی از باستانشناسی گله کردن من بخوام بگم همینطور که شما فرمودین مگر اون رشده های دیگه علوم انسانی حال و روزش بهتر شما وقتی تو سوم راهنمایی 90 سال قانون کشورت اینه که اگه معدلت شد 18 و 19 برو ریاضی فیزیک معدلت اگه 16 و 17 و, و اینا بود برو تجربی اگه معدلت هم 11 تا 12 بود دیگه همین اونم اصلا هست دیگه برو اینجا آلا بالاخره یه طوری میشه بعد این ایده معدل 11 تا 12 که بهره هوشیشون همین اندازه است و خدا بهشون داده و احتمال آدمایی که پشت کار خیلی زیادی ندارن تو زندگی و اینا جمع میشن خب توی اون رقابتی هم که میکنن برای ورود به دانشگاه از بین بین خودشون رقابت میکنن ده. یه عده از همینا هم میرن تو دانشگاه باز تو کارشناسی ارشد دکتر هم باز همینان یعنی یه عده باز فعالتر بین همینا هم. حالا استثنا یک کسایی مثل دکتر حسابی مثل آیه آی فیروزی اینا از رشته های دیگه که مثلا آدمای باوشی بودن هم وارد میشن مثل یک شهابی هن تو آسمان تاریک خاطر خب شما از این باستانشناسی، شناسی از این رشته تاریخ از این آدم ببینید علوم انسانی آدم آدمایی میخواد که اینجوری بگم کسانی که بهره هوشی متوسط و متوسط به پایین دارن ابدا نباید پاشو بزنن تولومسانی دقیقاً بله سعودیا 90 سال پیش سامانه آموزشی ما رو طوری گذاشتن که درست برعکس یعنی فرشا شلوار برعکس چپه پات کن درست گفتن هر کی بروش پوینت رو بده لمس کاری که خودشون میکنن وقتی میگیم استعمار میگن شما دایی جان ناپلئون. اصلا آقا من خود دایی جان ناپلئونم. ببینید کجای حرفم غلطه. بله. اینا میرن این بچه ها رو جمع میکنن تو این رشته. خب شما بعد از این بچه ها چه انتظاری دارین؟ کسانی که بهره هوشی متوسط به پایین دارن متوسط به متوسط پایین اصلا نباید طرف علوم انسانی برن. علوم انسانی بهره هوشی بالا نیاز داره. اینم باز کفایت نمیکنه. تو باید طوری باشی از نظر آزمون بدی های خاص بدی که توان تحلیل بالا هم داشته باشی بهره هوش تنها بازم تو طول مثالی کفایت نمی‌کنه تو باید بتونی دو تا مورد رو که در دو بخش تحقیق شده پژوهش شده نتیجه‌اش به دست آمده اینا رو باید بتونی به هم ربط بدی ربط درست منطقی بدی نه همینجوری رشته علوم انسانی رشته عجیب غریبی آدم مثلا اونجا می‌بینین که رئیس جمهوراشون کشور اروپای آمریکایی رو نگاه کنین یا ژاپن کره جنوبی همه علوم سیاسی اقتصاد، حقوق، نمیدونم چی اینا کشور ما هم که هرچی مهندسه نمیدونم سیالات، مکانیک، چی، فلان اینا اینا همه یا وزیرن یا وکیلن یا چی همه بگم تو این جامعه که اینطوری میشه بعد خیلی اتفاقای خندداری هم میفته یکی دو سال پیش روزنامه شرق نوشته بود که آقا بچه ما تا کی باید مجموعه ماردوش رو نگاه کنن. یه مجموعه بود درباره زندگی فریدون بله. نامش هم خیلی بد انتخاب کرده بودن دیگه حالا گذاشته بودن ماردوش این نوع تفکر ادامه داره مثلا یکی از چیزایی که به برنامه کلاق علمی زیارات گرفتن آقا این دیوی وحشتناک عشدناکه های ما میترسن چطور شد هالیوود بیسازه اجدها می سازه 700 800 همه نوآش میسازه میاره می خیلی هم جذاب قشنگ هم, هم کیف میکنن همین که به ما میرسه میخوایم یک چیز استوریمونو بیاریم توی برنامه کودکانه دیگه این بچه بچه‌ها بشناسنش دیگه وحشتناک و بد میشه حالا از این بحثات درد دلا فراوونه دیگه حالا ما تو جلسات هایی اینو در هستیم این تفکر که چه داره کشور ما رو مثل موریانه میخوره مثل خوره میخوره جوانه به مختلفشو بس میکنیم و به امید خدا اشاره میکنه بله خیلی متشکرم از حضور دو بزرگوار ما از الان برای قسمت سوم و چهارم شنوندگانی گرامی و کارشناسان گرامی برنامه رو مطلع میکنیم چی کار میخوایم بکنیم چه برنامه و چه در واقع کاتگوری داریم برای برنامه آینده ما در قسمت سوم و چهارم ایران وچ میخوایم یک در مورد مدل تاریخ و باستانشناسی کشورهای موفق که تونستن تاریخ خودشون رو تا حدودی احیا بکنن و از دستبرد غربی ها در امان بدارن مورد بررسی قرار میدیم و ضعف هایی که تاریخ نویسی و بخش باستانشناسی ما هستش رو مورد بررسی قرار و به اضافه اینکه برای اینکه ورود بکنیم به بحث خودمون با و تاریخ ایران منابعمون چه منابعی داریم برای اینکه این تاریخ رو برای شنوندگان گرامی بازخانی و در واقع بازشناسی بکنیم از شنوندگان گرامی بابت توجه به این برنامه بسیار سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی خواهش می‌کنیم که بابت حالا بعضی وقت‌ها شاید بحثا تخصصی بشه ما نمی‌تونیم با در واقع الفاظ و نوع ادبیات رو صحبت کنیم می کنیم حوصله به خرج بدن و ما به بحث‌ها و قسمتهای شیرین و قسمت‌هایی که غرور ملی و اون عظمت و شوکت ملی ما ایرانی ها رو نشون خواهد داد رو خواهیم رسید و ان این برنامه باعث بشه که یک قرون ملی در میان جوانان و در میان عامه مردم به وجود بیاد و اون عقده حقارتی که متاسفانه به وجود آورده استعمار در کشور ما اون تا حدودی حالا ما خیلی ادعایی هم نداریم ولی خب اگه بتونیم حداقل چند صد نفر یا یک هزار نفر رو وادار بکنیم که حداقل شک بکنن در این مبانی که به ما یاد دادن ما رسالت خودمون رو انجام دادیم شنوندگان گرامی رو تا آغاز قسمت سومین برنامه و خداوند متعال می سپاریم. خدا خدایی آن رو